چار دیوار جنون ساخته از سنگ بلاست به بهشتش ندهی هر که دهد مغبول نه سجده برخاک سجده برخاک حسین ابن علی باید کرد که وفاداری و ایثار به او مدیو. جانم به این آقا این حسین کیه که عالم و دیونه خودش این حسین کیه که هنوز به دنیا نیومده انبیا براش گریه کردن این حسین که وقتی آدم و خلق کرد به عنوان بشر. جبریل گفت پنج دا اسم یادت میدم هر وقت گرفتار شدی، خدا رو به این اسما قسم بده با تعجب نگاه کرد گو مگه قبل از منم کسی خلق شده گفت چی داری میگی خدا تو رو از نور این پنج نفر خلق کرده نه تو رو عالمو. نا عالم و زمین و زمانو چی بگم گفت اول میگی یا حمید و به حق محمد بعد میگی یا علی به حق علی بعد میگی یا فاطر رو به حق فاطمه بعد میگی یا محسن و به حق الحسن یه لحظه جبرئیل مکس کرد یه اهل دلی میگفت این مکسش معنا داشه میخواست بگه اگه خیلی خیلی کارت کرد آخرش بگویا قدی من حسان به حقل حسان جانم جانم برو به پدر مادر دعا کن این عشق تو و این راحتی به دست نمیاد تا روزه من نمیخونم اینجوری گریه میکنم ای خدا این در و دیوار شهادت بدن ما هفت سال ساله داریم روز هربعین میان من که میان حالا خیلی و سالهای زیادی میام. همین امروز از ما قبول کنن بسه آدم گفت جبریل قبول کردم ولی ازت یه سال دارم این آخری که گفتی کیه گفت چرا؟ گفت نمیدونم تا اسمشو بردی همه قمای عالم رو سینم جمع شد گفت حالا بهت میگم کیه این اسمش حسینه فقط یه جمله بد بگم مهریه مادرش آبهای همه عالمه چهار تا نهر رو زمین و چهار تا نهر تو بهشت مهریه مادرشه فقط اینو بدون لحظه آخر هرچی داد میزنه یه نفر نیست یه قطر آب بش بده چشن سر از بدنش جدا کنه این کیه این حسین این حسین کیه که آدم روز اول خین قد عشق میریزه براش سجده برخاک حسین ابن علی باید کرد فداکاری و ایثار به او مدیون است دوکس ولی یه عالم حرف داره بی جهت بی جهت این همه برگرد جهان گردیدیم نقطه اشق از این دایره ها بیرون است من همه این غزل و این بیت خوندم کمتر از کمتر از شم نباشید کم تر از شم نباشید که در محضر عشق سوختن آب شدن دم نزدن قانونم جانم یه عشق قشنگ یه ناله قشنگترم میخواد کم تر از شم از سوختن آب شدن دم نزدن قانون است یه جمله و برم تو روزه من میخوام اینو بگم هر کی تو این عالم گرفدار حسین بشه آقابت شبینه باید بسوزه باید دم نزنه هر کی حسینی بشه باید به زینم اقتدا کنه میدی یه دخلی خواهد یه خواهر این همه بلا خیره اونم به خاطر حسین گفت حسین جان فقط به خاطر تو به خاطر توی حسین این همه بلا رو زینب تعمل کرده کم تر از شم نباشید که در محضر عشق سوختن آب شدن دم نزدن قانون است حالا زینب تصور کنید روز تصور میخواد باید تجسمت تو روز قوی بشه باید هر سال اومدی. روزه اربعه این چنینی رفتی تجسم کنید فقط تجسم کنید شما یه داغ ببینید خدا نکرده چهل روز نذارم گریه کنی نه نه بسید بهتر بگم چل روز گریه کنی بزننه <تصفح> چل روز صدا نالت بلند شد یا تازیانه بیا یا تصور کن بعد چل روز برسوننت کنار قبر عزیزت بگن حالا راحت باش هر کاری میخوای بکنی بکن وقتی چیز دیگه حرف قشنگی بزد استاد ما بگن بعضی وقتا تو فامیل وقتی یکی از دنیا بره خدا رحمتت کنه محمد همه خوش گفتار که میگن بچه کوچیک داشتی یه بزرگتر تو فامیل همه نگاه ها به بزرگتره است دیدی وقتی یه خبری بدن خبر مرگ و شهادتی خبر ناگبار بدن همه نگاه به بزرگتره میکنن یه دفعه اون که بغزش به ترکه همه با چیه گریه میکنه اون بزرگتره است که خودشون گر میداره میگه من الان گریه کنم بقیه هم گریه میکنن همه به من نگاه میکنن ای زینب میخواست گریه کنه میدیدیم این بچه ها نگاشو به هم بست. انگار خودشون نیگرداشته، انگار نیگرداشته، لذا وقت دیر رس است امروز رسیدن دیگه نتونستم جلوی زینا برم. من این چند بیت استاد اجمندهمون جای انسانی رو آروم برات میخوامم شوخو ده علی گریهایی راحت گریه میکنه همه روزم ما هم همینه. اگر که دیده خونبار من امان میداد. کنار خا تو شرح دلم زبار میداد چیکار گلم و زندگی صدام در نمیاد شل منزه از این شهر به اون شهر که ای فکر میکرد یه روز آواره این شهر و شهر بشه داداشت تو بوده ای همه ره را و من چی بگم خودت که شاهد بودی بدنت اینجا بوده ولی سرت که چهل منزل همه جا دنبال زینب بوده تو بوده ای همه ره را و که چه سوند دلم به بوته عشق تو امتحان میدود چرا این دو سبی ای تو حسی گفته داداش رهینه منت اشکام رهین نت اشکم که بر روخم میریخت گل خزان زده را آب باقبان میده ای آقا ای, آقا ای آقا به هر زمان ببیرم از اینجا به بعد ساگر نوازی صدا تو خرچ کنه یه روزی دهن پر پنبه یه روزی دست دار تو کفن میبندن یه روزی سنگ لعدو میذارن داد میزنی بزا یه بار دیگه بگم حسین الان تو میتونی بگو حسین جانم جانم داداش به هر زمان به هر زمان که سراغ تو تو گرفت لا اله ایلالله. به هر زمان که سراغ تو دخی تو گرفت لا اله ایلالله. سنان سنان لا اله ایلالله. سنان همون سنان ابن انس نانجیب ملعونه لا اله الله لا اله الله خدا با این هر چی یه هر هرچی گرفتی گریه کن شاید تو این یه همه روزه رو من بخونم سنان چیه سنان و ای نیزه و این نیزه بلنده لا اله الا الله آماده یا نه صدا زد به هر زمان که تو دختر تو گرفت جواب طفل تو را با سنال سنال میداد کجای آلم دید یه بچه یتیم و با نیزه آرمون عمل آله بزنن تو خدا چند سال ما به ناله هم دیگه عرش گرفتیم دیگه ای وای حسین اگر اگر عزیز شراغ همه رو بگیر همه امانت ها تو وردم حسین داداش وقتی بچه های زینب رو از میدون میووردی زینب پرده خیمرم بالا نزد یادته همه از من سوال کردم چرا نرفتی بچه ها تو از حسین بگیری گفتم شاید حسینم خدالت بکشه شاید داداشم منو ببینه شرمنده بشه داداش بیا تلافی کن داداش شراغ همه رو بگیر سراغ سه سالتو نگیرت من چرا چراش الان بد میگم. اگر عزیز تو نس پرده بود جان در شام کنار خاک تو چون میرسید جان میداد یه بیت روزه من همین یه بیته، صدا داداش نخواستم تو خدا تجسم کنیه به تو نخواستم نخواستم که برد پی به تشد و چوب دالا <تصفيق> منم مریض ها رو خستم ولی ناله تو کمک میکنه به من نخواستم که برد پی به تشد و چوب لب تفل تو بر من تو را نشان می همه موازب بودم بچه ها تو آروم کردم هر وقت سراغ تو میگرفتن نوازششون میکردم هر وقت دختر و بابا بابا میکردن میگفتم یا باباتون سفره یا میاد اما یه جا نتونستم یه جا صبر درد دستم رفت کجا زینب میگه یه جا دیگه دخترات همه چی رو یددن او لحظه ای بود که نا نجیب چوب و بلند کرد میی به او دوده حال میز خو یه مطب صدای خورآ بلند شد اعود و بالله منش شیطان الرجیم بسم الله الرحمن و همین صدای خسته من میخوام این قرآن رو براد بخونم همین گریه کنی روزه بخونم براده و سیالمون لذین چقدر آشناس. این بچه ها رو پاهاش رو بلند شدن یکی داره با دست نشون میده همه قاری قرآن احترام داره بگوه انگر چوب نزنه همه این سر بابامه، به توی کی لا اله الا نوشته یکی از این دختران دوی در جمعیت بیرون سر رو بغل کنه خیرتی یا شما ای که یه دختر یتیب ببینید پاها تون بی که دختر حسن دوید سر بابا رو بغل کنه چنان نانجیب با تو تونه دلد زینب دوید جلو گریبانشو پارکن بی حیا شو بیزنی بزن چرایی دختر همه بگید حسین یا با عبدالله ما کی هستیم ما کجا بودیم اون زن فاحشه یه بدکاره الله وکره به قرآن بدن میرزه کی میگه اینا دروغه به قرآن ضربه میخورن اونایی که میگن مگه میشه یه قطره عشق آدمو بهشکی کنه کی میگه این حرفا اون زن فاهشه اون زن بدکاره حالا با هر عنوانی بخوام بگن حتی سفره گناه تو خونش و را هم بود اون مرد و بود تو خونه باش گناه کنه میگه دیدم خونم سرده گفتم برم بیرون یا هیزان بیارم میگه اومدم دیدم سر کچمون روزه است همه تو جلسه دارن سینه میزنن این دیگ و اجاقی که دمه در و ول کردن از عشق اماموسه رفتن تو اجاق زیرش خاموشه درم شخوتایی بیچارها خبر ندارن قضاشون زیرش خاموشه گفتم بذار فوت کنم این غذار زیر روشم بشه میگه سرم ورددم پایین دا میگه یه فوت کردم این دوده رفت تو چشم اشکم جاری شد خود به خود دلم شکست نمیخواستم گریه کنم حالا این هزار رو فوت کنم یه خود از گور بگیره این دودش رفت تو چشم اشکم جاری شد یه لحظه گفتم حالا یا ما که برای این آقا گریه نکردیم تو الان هم یه قدر اشکم اینجوری اومده یه ذریخ هم هستن نشست جلو آتیش گریه کردن اومد خونه به اون مرده گفت برو برو دیگه اینجا نیا میگه نشستم تو خونه انقدر گریه کردم تا همونجا نوشته از دنیا رفت فرداش لا اله الالله بیگه فرداش شبش حضرت سید و قربون این ارباب برم اومد به خواب اون عالم گفت چرا نشستی برو یکی گریه کنای ما دنیا رفته برید غسلش بدید برید به خاطر ما تجی جنازهش یک گریه کنه ما حالا من و توی که چند ساله میام آمید آخ فدای تو آقا من کجا مثل تو ارباب پیدا کنم یه جمله بگیم هممون رفقا خجالت هم نکشید امروز اینجوری با عبی عبدالله حرف بزنید بگو حسن جان این کوچه پس کوچه ها رو میبینید من که اولش اینجا رو بلد نبودم که حسن جان من تو دنیا دنیشتم تو رو پیدا کردم